برادران عزیز مجاهدین طلباء کرام یک چیز را فراموش نکنید ما در نزد این اسلام که ما یقینا ایمان داریم که این دین است کی فقط در نزد خداوند قبول است ان دین عند اللہ الاسلام در نزد خداوند فقط دین اسلام مقبول است یگان دین را خداوند قبول نخواهد کند فقط دین اسلام را قبول میکند ما کی لشکر همین دین اسلام هستیم چی مسئولت داریم؟ برادران با این دنیایی که ما اگر ما فریب خوردیم و جهنم میبرد باید کی ما فریب نخوریم دین فروشی نکنیم عقید فروشی نکنیم اسلام فروشی نکنیم خون شهده را نفروشیم بیاین از صادقین باشیم بیاین مسلمان حقیقی باش در صف صادق باش این نصیحتی که من به شما داشتم سلطان دین سرنگون باد دشمنان دین سربلند باد دوستان دین سرنگون باد دشمنان دین دشمنان دین سربلند باد دوستان دین باد دشمن سر نگون با دشمنانی دین، سر دیلند با دوستانی دین. سر نگون با دشمنانی دین. ما بدیل امید بستیم کمر، گر لحیم از نیز و تبر، ترسی مازی تاگ از تیوران است. ذار ده حکم جان خالق قلب شان سر بلند با دوستان دین سرنگون با دشمنان دین سر بلند با دوستان دین سرنگون با دشمنان سر دین راهی ما حقاس یاری ما خدا راه نمای ماست ذات کبریا راهی ما حقست یاری ما خدا راه نمای ماست ذات کبریا سر بلند با دوستان دین سر نگون دشمنان دین سر بلند با دوستان دین سر نگون گد دشمنان دید ای مجاهدین ای برادران ای خدا فراست ای دلاوارون کوششی کنید فرصتی غداست درس بندگی وقت امتحان سر دلند باد دوستانی دید سر نگون با دشمنانی دین سر بلند با دوستانی دین سرنگون با دشمنانی دین در راهی خدا محوه میکنم جانی بی غذا می رویم چوباد محوه میکنم عاملی فساد خوف مرگ را مبرم زیاد سر بی لند باد دوستانی دین سر نگون دشمنانی دین diland ba dostan din sar nigun go dushmanan din sar diland ba dostan din sar nigun go dushmanan din sar nigun go dushmanan din sar nigun din